آمان چه برایش زندگی کرده ای و میکنی دروغ است و فریبی که زندگی به مرگ را از دو پنهان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی ترجمه سروش حبیبی با صدای محسن زرابادی پور تهیه کننده دامون آزری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه فصل اول در امارت بزرگ دادگستری هنگام رسیدگی به دعوای خانواده ملوینسکی، دادستان و اعضای دادگاه توی زمان تعطیل جلسه برای تلفظ در اتاق ایوان یگروویچ شبک گرد آمده بودند و بحث به پرونده پرسر و صدای کلاسوفسکی کشیده بود. فیودور واسیلیویچ با حرارت بسیار میکوشید ثابت کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و ایوان یگروویچ سر حرف خود پا می میکرد که دارد. اما پیوتر ایوانوویچ که از ابتدا به بحث وارد نشده بود توجهی به آنچه میگفتند نداشت و سر خود را به خبرنامه که تازه آورده بودند گرم کرده بود گفت آقایان ایوان ایلیچ هم مرد گفتند چه حرفها راست میگویید؟ خبرنامه را که هنوز خوش نشده بود و بوی و مرکب میداد به فیودور وسیلیوویچ داد و گفت بفرمایید خودتان بخوانید. خبر زیر در هاشیه سیاهی چاپ شده بود. براسکوویا فیدوروفنا کالابینا با آن در گذشت شوهر عزیز خود ایوان ایلیچ کالابین، عضو دیوان عالی استیناف را در تاریخ 4 فوریه 1882 به اطلاع خیشان و آشنایان میرساند. تشییع جنازه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت. ایوان ایلیچ همکار آنها بود و همه دوستش داشتند. از چند هفته پیش بیمار شده بود و میگفتند که از این بستر بر نخواهد خواست البته همچنان در سمتش باقی بود اما همه فکر می‌کردند که در صورت فوت او ممکن است الکسیف جای او را بگیرد و سمت الکسیف نصیب وینیکوف یا اشتابل بشود به این ترتیب هر یک از آقایان حاضر در اتاق به شنیدن خبر مرگ دوست خود در فکر بودند که این پیش آمد چه نتیجه ممکن است در تغییر سمت؟ یا ارتقای مقام خود یا آشنایانشان داشته باشد. فیودور واسیلیوویچ با خود می گفت حالا سمت تشتبل یا وینیکوف به من می رسد. بعد از مدت هاست به من دادند. این ارتقای مقام برای من 800 روبل اضافه حقوق هم راه دارد. به علاوه فوقلاده هزینه دبیرخانه. دویر خانه. فکر می کرد حالا باید برای انتقال برادر زنم از کالوگا اقدام کنم. زنم از این انتقال خیلی خوشحال می شود. دیگر نمی تواند بگوید که هیچ کاری برای کسانش نمی کنم. پیوتر ایوانوویچ به صدای بلند گفت من میدانستم که از این بیماری جان بدر نخواهد برد. خیلی حیف شد. باسینویویش گفت حالا واقعا چش بود؟ پیوتر ایوانوویچ گفت دکترها که مرزش تشخیص م گیرم تشخیص میدادند ولی هر یک تشخیصی دیگر با این حال آخرین بار که دیدمش به نظرم آمد که خوب خواهد شد بیچ گفت ولی من از عید دیگر به دیدنش نرفته بودم همش تصمیم داشتم بروم و نمیشد شبک گفت ببینم چیز دار بود واسولیوبیچ گفت مثل این زنش چیزکی دارد، اما نه آنقدر که به حساب آید. پیوتر ایوانویچ گفت، بله، باید رفت دیدنشان، ولی خانهشان خیلی دور است. شپک گفت، البته از شما دور است، خانه کی به شما نزدیک است؟ پیوتر ایوانویچ لبخندی به روی شپک و گفت، این دوستمان نمیتواند بر خود هموار کند، که من آن طرف رود می‌نشینم. و از دوری مسافت در شهر صحبت به تالار دادگاه برگشتن تغییر و تبدیلاتی که به احتمال به دنبال این مرگ در دستگاه دادگستری صورت می‌گرفت، ذهن همه را به خود مشغول می داشت. اما علاوه بر این افکار همان فکر مرگ یک دوست نزدیک در دل دوستانی که این خبر را می شنیدن طبق معمول احساس شادی خاصی بدید میآورد خوشحالی از اینکه او مرد و من نمردم. همه پیش خود میگفتند یا حس میکردند. حجب او مرد ولی من زنده ماندم اما آشنایان نزدیک ایوان یا به اصطلاح دوستان سمیمیش نخواسته به این هم فکر میکردند که حالا آدابدانی ایجاب میکند که در مراسم مذهبی موت شرکت کنند و برای ابراز همدردی به دیدار همسر آن مرحوم بروند و این کارها همه شاق و بسیار علالهور بود. از همه نزدیکتر به او فیودور واسلیوویچ و پیوتر ایوانوویچ بودند. پیوتر ایوانوویچ او را از دانشکده حقوق می و خود را مدیون او می سر نهار خبر درگذشت ایوان ایریچ را به همسرش داد و به او گفت که امکان انتقال برادر او به حوزه اداری خودش بیشتر شده است. و استراح از نکرده فراک پوشید و به خانه ایوان ایلیچ رفت یک کالسکه و دو درشکه جلوی در خانه ایوان ایلیش ایستاده بود پایین در رخکنخانه خانه کنار جارختی در تابوت آراست به تاغ شالی از گلابتون درخشار و مزین به ملیله و منگوله به دیوار باداشته شده بود دو بانوی سیاپوش داشتن پالتای پوست خود را در می آوردن. یکی از آنها خواهر ایوان ایلیچ بود که او می شناخت و آن یکی ناشناس بود. شوارد تو سپیوتر ایوانوویچ که داشت پایین این می آمد چون از بالای پله او را دید که وارد می شود استاد و سری جنباند و کشمکی بوزد. مثل این بود که میخواهد بگوید این ایوان ایلیچ هم که کار را خراب کرد ولی ما حواس جمع است و دم به تله نمی دهیم. حیعت شوارز با آنگون ریش های انگلیسی وار و اندام لاغر آراسته در فراکش مثل همیشه متین و برازنده بود و این متانت که همیشه با شوخ چشمی و رفتار شیطنتبار و منافات داشت اینجا کیفیتی جذاب و نمکین به او میبخشید این احساس پیوتر ایوانوویش بود پیوتر ایوانوویش اثر احترام به دو بانو راه داد تا جلو بروند و به دنبال آنها آهسته به طرف پلکان پیش رفت از پایین آمدن منصرف شد و نیمه راه ایستاد پیوتر ایوانوویچ به ماندن او را فهمید پیدا بود که میخواهد با او قراری بگذارد که بازی شبشان کجا باشد بانوان از پلکان به سوی بانوی صاحب ازا بالا رفتند و شواردز که لبهایش را با حالتی جدی بر هم فشرده بود با شوخ چشمی و اشاره ابرو به پیوتر ایوانوویچ فهماند که اتاق سمت راست که جنازه در آن بود برود پیوتر ایوانوویچ به آن اتاق وارد شد و طبق معمول متحیر بود که آنجا چه باید بکند فقط یک چیز را میدانست و آن این بود که خاج کشیدن در این گونه مواقع اگر خاصیتی نداشته باشد ضرری هم ندارد اما نداشت ندوشا آیا ضمن خاج کشیدن کمر هم باید خم بکند یا نه و به همین علت راه میانه را انتخاب کرد به این مراکه هنگام ورود کشیدن خاج را با کرنشی ملایم همراه کرد و تا جایی که حرکت دست ها و سرش اجازه میداد داد نگاهیم به در و دیوار اتاق انداخت. دونو جوان که یکی از آنها شاگرد دبیرستان بود و ظاهرا از خیشان نزدیک ایوان ایلیچ بودند خاجکشان از اتاق بیرون رفتند. پیرزنی بی حرکت بود و بانویی که عبروبانش را به شکل عجیبی بالا برده بود داشت در گوش او چیزی می گفت شماس لباس پوشیده با جسارت و به صدای بلند و لحنی قاطع که هیچ چون و چرا برنمیتابید تابید چیزی می خوند گراسیم باشی ایوان الیچ که موژیکی بود با سبکپایی از جلوی پیوتر ایوانو پیش گذشت و چیزی کفه اوتا پاشید پیوتر ایوانوویچ به دیدن این کار فورا بوی تعفن ملایمی در بینی احساس کرد. آخرین بار که به دیدن ایوان ایلیش آمده بود، این موژیک را در اتاق دفتر او دیده بود که وظیفه بیدارپایی بر بالین او را به عهده داشت و ایوان ایلیچ او را بسیار دوست می‌داشت. پیوتر ایوانوویچ همچنان خاج می‌کشید و با سر در راستایی میان تابوت و شماس و شمایل مقدس که روی میزی در گوشه اتاق قرار داشت، قرنش می‌کرد. بعد وقتی که این کشیدن خاج به نظرش به اندازه کافی تکرار شد از آن دست کشید و چشم به مرده دوخت مرده مثل همه مردگان بی و سنگین در تابوت افتاده بود اندامهای خوشگیدش مردوار در بالش تابوت فرو رفته و سرش برای همیشه روی بالش واپس افتاده و پیشانی زرد و موموارش مثل هر مرده دیگری بیرون زده بود با های گود افتاده تاس و بینی برجستش گفتید لب زیرینش را فرو می فشرد سیمایش سخت تباز شده بود و نسبت به آخرین دیدارشان لاغر ولی مثل همه مردگان زیباتر و خاص گویاتر از زمان زندگیش بود حالت این چهره حکایت از آن می کرد که آن چه کردنی بوده کرده است و به شایستگی از این گذشته؟ در این حالت آثار ملامتی و هشداری به زنده ماندگان محسوس بود. این هشدار به نظر پیوتر بیش بیشنابجا آمد. دستکم کم او خود را طرف خطاب آن نمی احساس ناخوشایندی در دلش آمد. و به همین سبب بار دیگر با شتاب خاچ کشید و با سرعتی که به نظرش از بایستگی دور بود به جانب در را افتاد. شوارتز در اتاق مجاور منتظر او بود. پایش را گشاد گذاشته دو دستش را پشت سر خود به هم داده با کلاه سیلندرش بازی میکرد. یک نگاه به چهره شوخ و شنگ و پیراسته و اندام آراسته شوارد نشاط را به دل پیوتر باز بازاورد پیوتر ایوانویج بازا میدانست که او شوارد بالاتر از این ملاحظات است و دل خود را تسلیم افسردگی نمی کند همان دیدارش میگفت. مراسم سوگواری برای ایوان ایلیچ پیش آمدی گذراست و برای تعطیل جلسه یا موکل کردن آن به بعد دلیل موجهی نیست یعنی هیچ مانعی نیست که همان شب هنگامی که پیش خدمت میز بازی را با چهار شمع نو افروخته می آراید، یک دسته ورق دست نخورده را باز کند و آن را درق درق به صدا در آورد و به طور کلی هیچ ای نمی توان تراشید که دوستان این شب را نیست مثل شبهای دیگر. به خوشی او این حرف را آهسته در گوش پیوتر ایوانوویچ که از کنارش میگذشت زد و به او پیشنهاد کرد که در خانه فیودروسیلیویش به جمع دوستان بپیوندد اما ظاهرا تقدیر نمیخواست که پیوتر ایوانوویچ آن شب را با دوستان ورقباز بگذراند پرانسگویا فیودروفنا زن کوتا قامت چاقی بود که و وجود تلاش بسیاری که برای انکار واقعیت و پنهان ساختن چاقی خود میکرد از شانه به پایین پرمتر می لباسش یک پارچه سیاه بود و سرش با توری سیاه آراسته. ابروانش را مثل بالوی کنار تابوت که وصفش رفت بالا برده و چهرش را به شکل عجیبی درآورده بود. با چند بانوی دیگر از اتاق خود بیرون آمد و آنها را به اتاقی که تابوت در آن بود برد و گفت، راوسیم مذهبی الان شروع می شود. بفرمایید. شورت کورنیش نامتعارفی کرد و از جای خود تکان نخورد. پیدا بود که دعوت بانوی خانه را نه میپذیرد، من نم میخواهد می رد کند. پراسکوویو فئودورونو همین که پیوتر ایوانوویچ را به جاورد آهی کشید و به جلال او آمد و دستش را گرفت و گفت: میدونم که شما از دوستان حقیقی ایوان ایریش بودید. این را گفت و او را نگاه کرد و از او انتظار کاری را داشت که به این حرفش پاسخی باشد. پیوتر ایبانو بیش که همانطور که در آن اتاق شایسته بود خاج بکشد اینجا لازم بود که دست زن را به فشارد و با آهی بگوید. بله باور کنید که همین کارا کرد و چون کرد که نتیجه دلها به دست آمده است. و هم خود متأثر شده و هم بر دل بالو اثر گذاشته است. زن بیوه گفت بیایید اینجا تا مراسم شروع شود باید با شما حرف بزنم. بازو تن را بدهید. پیوتر ایوانوویچ بازویش را پیش آورد و زن دست زیر آن انداخت و نفری از کنار شوارد کسر افسوس به او چشم هیزت گذاشتن و به سمت اتاقهای داخلی خانه رفتن. نگاه شوخ شوارز می گفت خب دیگر کلک بازیم کنده شد اگر پای پنجمی انتخاب کردیم گیله نکنید وقتی کارتان تمام شد و آمدید پنج نفریم می شود بازی کرد پیوتر ایوانوویچ آهی امیغتر کشید و دود دلی بیرون داد و پناسکو فیودورونا از راه قدر شناسی برای این آه دست او را شد و او را به اتاق پذیرای مخصوص خود برد که دیوارهایش با کتان گلدار گلی رنگی پوشیده بود و چراغی کم نور و قمنگیز در آن میسوخت کنار میز نشستند بانو روی کاناپه و پیوتر روی بالشتک فنرداری که فنرهایش از هم در رفته بود و زیر وزن او ناجور جمع میشد پراسکوویا فیودورونا میخواست هشدارش دهد که روی صندلی دیگری بنشیند اما این هشدار را با وضع خود ناسازگار یافت و منصرف شد. پیوتر ایوانوویچ وقتی روی این بالشتک می نشست، بیاد آورد که ایوان ایلیش وقتی این اتاق را می‌آراست، از غذا در خصوص همین پارچه گلی رنگی پوشش دیوارها و برگهای سبز رنگین روی آن از او نظر خواسته بود. بانوی بیوه هنگامی که میخواست روی کاناپه بنشیند و از کنار میز میگذشت، روسری سیاهش به کندکاری های لبه میز گیر کرد زیرا تمام اتاقها با مبل و پیرای های ریز و درشت چنان انباشته بود که حرکت آزاد در آن میسر نبود پیوتر ایوانوویچ برخاست تا تور را آزاد کند و فررهای بالشتک که از سقل او آزاد شدند برجستند و بالشتک به نشیمنگاهش خورد اما بانوی بیوه خود شروع کرد که تورش را از بند میز آزاد کند و پیوتر روی بالشتک نشست و فنرهای سرکش را سرکوب کرد اما بانو در تلاش خود چندان موفق نبود و پیوتر ایوانوویچ دوباره برخاست و به دست و پا افتاد و فنرها باز سرکشی کردند و این بار حتی ترق ترق به صدا در آمدن. وقتی عاقبت این گیرودار پایان یافت بانو دستمال مال لطیف سفیدی بیرون آورد و شروع کرد به گریه کردند و پیوتر ایوالاویچ که ماجرای تور و کشمکش با فنرهای سرکش اندکی از اندوهش کاسته بود در جای خود آرام گرفت بلا تکلیف که حالا چه باید بکنند ساکالوف همان پیشخدمت و عبدارباشه ایوال ایلیچ وارد شد و این وضع نامسبور را به هم زد و به بالویش اطلاع داد که زمینی که او در گورستان برای به خاک سپردن شوهرش انتخاب کرده است دویست روبل تمام میشود. بانو گریش را برید و ستم دیده نگاهی به پیوتر ایوانوویچ انداخت و به فرانسه به او گفت که بار دلش سخت سنگین است پیوتر ایوانوویچ بیان که چیزی بگوید با اشاره سر به او فهمان که یقین کامل دارد که بار دل او کم نیست و ممکن نیست غیر از این باشد پراسکوفی فیودورونا فیودروفنا با صدایی از درد قم ضعیف و لرزان و لحنی بزرگوارانه گفت خواهش میکنم ملاحظه نکنید و سیگار بکشید و بلافاصله با گراسیم به حل و فصل مسئله قیمت زمین پرداخت پیوتر ایوانوویچ سیگاری آتش زد و ضمن دود کردن آن میشینید که بانو با چه تفصیلی درباره جزئیات قیمت زمین از او پرسجوع میکند و عاقبت زمینی را که باید خرید معین کرد از این گذشته وقتی مسئله زمین حل شد در خصوص نوع سرایان هم دستور لازم را داد و ساکوف را مرخص کرد. بعد ضمن اینکه آلبوم های روی میز را به کناری میزد دید که ممکن است خاکستر سیگار روی میز بریزد و فورا زیر سیگاری را زیر دست پیوتر ایوانوویچ سراند و گفت: «من همه کار را خودم می کنم فکر می کنم است که وانمود کنم که غم و غصه مرا از کارهای عادی زندگی باز میدارد به عکس اگر چیزی باشه است که نمیگویم تصلایم دهد بلکه فقط افکارم را از این مصیبت منحرف کند همین اشتغال به کارهای اوست این را گفت و دوباره دستمالش را بیرون آورد تا گریه کند اما ناگهان گفتی به قصد چیرگی بر اندوه تکانی به خود داد و با آرامی شروع کرد با او صحبت کردن خب بگذاریم میخواستم با شما صحبت کنم پیوتر ایوانوویچ به احترام کرنشی کرد اما چون دید که باز فنرهای بالشتک زیر پایش به جنب و جوش آمدن فوراً راست نشست و مجال سرکشی به آنها نداد زن گفت روزهای آخر فوقلاده عذاب کشید پیوتر ایوانوویچ گفت اجاب واقعا زن گفت وای نمیدانید چه عذابی چه بگویم دقایق چه چند ساعت آخر را پیوسته فریاد میکشید سه شبان روز آخر را مدام ناله میکرد اصلا تحملش ممکن نبود هیچ نمیفهمم چطور توانستم تاپ بیاورم از پشت سه اتاق در بسته صدایش شنیده میشد وای نمیدانید من چه کشیدم پیوتری بالوویچ پرسید ببینم پس بهوش بود بانو آهسته گفت بله تا دقیقه آخر بهوش بود یک رو ساعت پیش از آنکه تمام بکند با یکی که ما خداحافظی کرد و حلال بایی طلبید. حتی خواست که والو رو دور کنیم فکر عذاب شخصی که این قدر به او نزدیک بود رنج همان پسرک بانشاتی که در دبستان هم درس و هم بازیش بود و در بزرگی هم کارش شد با وجود ناگواری آگاهی به کاری خودش و این زن ناگان سخت به وحشتش انداخت دوباره پیشانی برجسته و بینی برلب بالا فشرده ی را به یاد آورد و برای خود وحشت کرد در دل گفت سوشبان روز از آبه و بعد مرگ کما بلا ممکن از همین لحظه هر دقیقه سر خود من بیاید به قدر لحظه سخت وحشت کرد اما در همان لحظه بیان که خود بداند چطور همان فکر همیشگی به یاریش یا آمد دید که این در چه ممکن بود برای خودش پیش آید. برای ایوانایلیش پیش آمده و او را ماف گذاشته است چون این چیزی نباید و نمیتواند برای او پیش آید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندو بگشاید این کار چنان که از سیمای شوعرس پیدا بود شایسته نبود پیوتر ایوانوویچ با این استدلال آسوده شد و با علاقه به پرسجو در خصوص چگونگی مرگ دوست خود پرداخت طوری که گفتیم مرگ مصیبتی بود خاص ایوان ایلیچ و هیچ کاری با او نداشت بانوی داغدار پس از مدتی درد دل و بیان جزئیات رنجهای جسمانی آوری که ایوان ایلیچ تحمل کرده بود و پیوتر ایوانویچ این رنجها را فقط از طریق آزردگی اعصاب پراسکوب یا فیادرونا در یافت. لازم دید که به اصل مطلب بپردازد. زن گفت آخر بیوتری ایوانوویچ نمی دانید که باره این مصیبت چقدر سنگین است. چقدر سنگین است. وای چقدر سنگین است. این را گفت و باز به گری افتاد. بیوتری وانوویش آکشان منتظرمان تا گریه زن تمام شود و فین کند و چون بانو گریهش تمام شد و فین را کرد گفت باور کنید که و بانو به حرف آمد و به بیان مطلبی پرداخت که پیدا بود تنها کاری است که با او دارد این کار آن بود که از او بپرسد که وقتی شوهری مرد بیوه بازمانده به چرا می تواند از دولت کمک مالی بگیرد بانو میکرد می کرد که می خواهد از پیوتر ایوانوویچ در این خصوص اطلاعاتی بدازا آورد اما پیوتر ایوانوویچ دید که او از همه جزئیات کار با اطلاع است و حتی چیزهایی میداند که او خود نمیداند دقت میدانست که چه پولهایی میتواند به مناسبت مرگ شوهرش از دولت بگیرد فقط میخواست ببیند آیا راهی هست که بیش از آنچه خود میدانست به دست آورد پیوتر ایوانوویچ کوشید که راهی بیابد اما پس از مدت تلاش و برای رعایت اصول ادب و استمالت از زن دولت را بابت امساکش دشنام دادن اظهار داشت که انگاری راهی وجود ندارد آن وقت زن آهی کشید و آشکارا به فکر افتاد که از چرا میتواند خود را هرچه زودتر از بار حضور او خلاص کند. پیوتری ایوانوویچ خود نکته را دریافت و فوراً سیگارش را خاموش کرد و برخاست و دست او را فشرد و به اتاق دیگر رفت. پیوتری ایوانوویچ در اتاق غذاخوری که ساعتی به دیوارش آویخته بود، همان ساعتی که ایوان ایلیچ به خود میبالید که توانسته است از عتیق فروشی بخرد، کشیش را دید؟ و چند نفری از آشنایان را که برای شرکت در مراسم نماز میت آمده بودن و نیز دختر خانم بسیار زیبایی را که میشناخت شناخت و دختر ایوان ایدیش بود. این دختر خانم سراپا سیاه پوشیده بود و کمرش که در حال عادیم بسیار باریخ بود در این لباس باریختر می نمود. سیمایش غمگین بود و مسمم و اندکی خشمالود. سری به پیوتر ایوانوویچ فرود آورد اما چنان با سردی که گفتی از پیوتر ایوانوویچ خطایی سرزده است پشت سر این دختر خانوم جوانی ایستاده بود که پیوتر ایوانوویچ می شناخت و میدانست که بازپرس و بسیار سروزمند است و از قرار معلوم نام زده او بود او نیز مثل دختر اوقاتش تلخ بود پیوتر ایوانوویچ با افسردگی به آنها کرنشی کرد و میخواست به اتاقی که تابوت در آن بود برود که نوجوانی که شاگرد دویرستان بود از زیر پلکان بیرون آمد. این نوجوان پسر ایوان ایلیش بود و مثل سیبی که با مرحوم پدرش نیم کرده باشند. درست همان ایوان ایلیشی بود که پیوتر ایوانوویچ از دانشگاهی حقوق بیاد داشت. چشمان از گریه قرمزش حالت خاصی داشت که از های نوجوان سیزده چارده ساله اکایت میکرد سیمای او به دیدن پیوتر جدی شد و خجالت کشید و در هم رفت پیوتر سری به او تکان داد و به اتاقی که تابوت در آن بود رفت مراسم نماز میت شروع شده بود شمها روشن بود و آوای آه و موی و بوی اسپند و کندور در فضا بود پیوتر ایوانوویچ با عبروانی در هم سر به زیرفکند و به کفشهای خود چشم دوخت یک بار هم به مرده نگاه نکرد و تصنیم اندیشهای یعساور نشد و یکی از نخستین کسانی بود که خانه را ترک کردند در رختن کسی نبود گراسیم همان پیشخدمت مخصوص ایوان ایلیچ شتابان از اتاق مرده بیرون جست و با دستهای کاراشنای خود توده پالتوها را زیر رو کرد و پالتوپوس پیوتر ایوانویش را پیدا کرد و به او پوشاند. به قصد اینکه که حرفی زده باشد گفت خب برادر گراسیم دلت خیلی تنگه است گراسیم تبسمی کرد چنان که دندال های سفید و مثل دندان روستایان منظمش نمایان شد و گفت چه می شود کرد؟ خواست خداست؟ است که در خانه همه می و با حالت کارگری که در بحبهی کار فرصت خاراندن سر ندارد فورا در را گشود و کالسکه او را ستا کرد و بیوتر ایوانویش را در آن نشاند و به سرعت عقب جست و به روی پله های ورودی بالا رفت و مثل این بود که در فکر است که دیگر چه باید بکند؟ پیوتر ایوانوویچ بعد از آن فضای پر از دود اسفند و کندر و بوی گندیدگی جسد و فلیک از تنفس هوای پاک بیرون لذت می برد. کالسکران پرسید کجا می فرمایی برم هم غربان؟ پیوتر ایوانوویچ گفت هر روز خیلی دیر نشده به خانه ی فیودور باسلیوویش سری بیزنم. پیوتر ایوانوویچ به آنجا رفت و به راستی نیز تازه پارتی اول بازی داشت. تمام می شود و او راحتی توانست به صورت پای پنجم به بازی وارد شود